لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا شریک في الملك ولم يكن له ولی من نسل وكبره تكبيرا فالسلام على خير خلقه فاشرف بريته سیدنا و مولانا حبیب اله الالمین عبل غاسم محمد صلى الله عليه وهدا و آله وسلم سیما نموسطهرو امام العصر حجت ابن الحسن العسكري المهدي الله اكبر اربا خون خطاب بلا انا طلاح الا اعدائه مجمعین من الان الا قیام يوم الدين خوب عرائز ما در این شبه نورانی ماه مبارک رمضان یه شرح کوتاهی بر مباعز و فرمایشات امیر علیه السلام به امام حسن مجتبا علیه السلام در نحجل بلاقه نامه سیوی م و این نامه واقعا مملو از مطالب حکمت‌آمیز که امیرالمؤمنین برای فرزندشون به یادگار گذاشتن و تدارک دیدن حالا در دنباله این فرمایشات امشب به این جمله میرسیم که حضرت میفرمایند که و تجرع القیزه فانی لم عره جرعتن احلا منها آقبتن ولا علز مقبتن یعنی ما شاید قبلا حالا دیگه من یادم نمیاد به چه مناسبتی در فرمایشات امیرالمومنین تو همین شب گذشته یه اشاره ای به همین کردیم حالا اینجا حضرت جامع‌تر میفرمایند میفرمایند که خشمت رو جرعه جرعه قرت بده فرو ببر همین که خدا در قرآن میفرماید کزم قیز قیز یعنی خشم قذب کزم یعنی خاموش کردن که خدا خشمو به آتش تشبیه کرده که بعد خاموشش کرد خود این در ادبیات هم زیاد میگن میگن آتش قذب که همه چی رو میسوزونه هم خود انسان رو میسوزونه هم دیگران رو بعضی گناه ها اینجوری دیگه کلیدی هند مثلا یکی از گناههای کلیدی در بدانات ما شرابه شراب از گناههایی که چون عقل رو ضایع میکنه آدم عقلش که ضایعه ممکنه به هر گناهی آلوده بشه یعنی تنها چیزی که یا یکی از چیزهای مهمی که میتونه جلو گناه گناهو بگیره عقل دیگه شراب عقلو و زایه میکند. آدم ممکنه به هر گناهی مرتکب بشه بعدم پشیمون بشه عقلش که بر میگرده شراب که زایه میشه ممکنه تو سرش بزنه پشیمون بشه از, گناه... از این گناه ها داریم و این گناه ها کلیدی هست خیلی خطرناک هست در حدیث هست جوئلت خبای فی بیتن خدا گناه ها رو توی خونه حبسشون کرده که تو جامعه نیاند و جامعه رو آدوده نکنند و جعل مفتاح و شراب کلید اون خونه رو شراب قرار داده که الان خیلی مبتلابه دیگه تو جهان این دنیا که این همه فساد توش دیاده مالا همین هست دیگه حالا یه زمانی شراب بود حالا قرصای روانگردان و نمیدونم شیشه و اینا آمده که اصلا شراب دیگه پیشش آب میوه <laughs> بلحمت به جامعه امروز بگیم که آب انگوره این توجه ما بشر دیگه خب به این وضعیت مبتلا شده دیگه همه اینا رو اسمش گذاشتن چی؟ تمدن و حالا ما خیلی جرئت داریم اینا رو میگیم کی میتونه تو دنیای امروز از این حرف میgene و خیلی امله شیشر هم قبول نداره دیگه میگن دیگه تا قدش اونم میگه قورسای هم قبول نداره ببین حالا تو دنیایطوری آقا کسی نمیتونه بگه لوات نباشه همجنس بازی نباشه اصلاً میگن دیگه و اصلا میگن اعدامش واجبه خدا دنیا رو اینجوری کردن شما شما نمیتونی بگی دیگه همجنس بازی نباشه و با ما یه بار تو همین جلسه گفتم هشت سال حکومت کرد بعد وقتی میخواست گزارش بده یکی از چیزهایی که بهش افتخار میکرد میگو من همجنس بازی رو قانونی کردم رسمی کردم این جز خدماتش بود حالا ما توی همچین دنیای زندگی میکنیم جل مفتاح و هش شراب امام حسین ها اگه امام حسین ها ما ست بدتر از اماییم همین حسین حسین هاست الان ما رو یه خود داره کنترل میکنه ولی ما همینی بشر بدون دین و بدون وحی و بدون مارمزون و بدون نماز و بدون ولایت همینه الان تمام اونایی که اینا رو ندارن همین همین اونایی که مارمزون ندارن مسجد ندارن همینند این گناه ها کلیدی میخواید سه میخواید ستاشو بگم آلا چون بحث ما رو قذبه دیگه یکی دیگه دروغ دروغ از گناه های کلیدیه خیلی گناه بزرگیه من همه حدیثی که براتون خوندم جعل مفتاح و شراب بعد امام پشتش فرمود ولی و شر رون مینم دروغ از شرابم بدتره البته ما های اینا رو خم نمی فهمیم درکش نمی کنیم و یکی از گرفتاری های جوامه کنونی نا من نه اگه به شما بگم ولو ما که مذهبی هستیم به شما بگم اینی که میاد بغل شما شبا گریه میکنه این شراب میخوره خانومش به من گفته میگه این از حیعت که میاد خونه شراب میخوره شما چقدر مشمعز میشید. اصلا حالت به هم میخوره دیگه. میگه بابا حجب میکی اصلا کمرش بزن این گریه هایی که میکنه اصلا خیلی بدت میاد شد شبا بیاد کنار شما بشینه رنج ببرید اما اگه بگم این آقایی که میاد شبابی شما گریه میکنه به من دروغ گفته شما میگه آقا دروغ که همه میگن سلوات بفرسته دروغ که دی... یعنی میگه دروغ که خدا گناهی نکرده حالا یه چیزی گفته خلاف واقع بود م... ما نمیفهمیم که دروغ از ش... امام زمان که بیاد میگن دین جدید آورده حدیث همه میگن آقا اصلا یه دین جدید این آقا نه دین جدید نیورده دینا وارونه بوده حالا وقتی حقیقتشون میگن برا مردم جدیده اون روز میبینید مردم از دروگگو بیشتر بدشون میاد تا شراب خور این جامعه به سمت فلاح میره که شما از دروگگوها بیشتر متنفر باشید تا مشروب خوره بگه هر دو بده ولی دروگگو کسیفتر از مشروب خوره من این توجه ببهمه این معلومه شما الان دین رو درست فهمیدی یا انقدی که الان مثلا ماها رو شاید به کشن شراب نخوری من خودم که الان میدانم اینجوری هم ولی به راحتی ممکنه دروغ بکیم این به خاطر اینکه ما شناخت صحیحی از دین نداریم دروغ هم کلیدیه الان کسی بگه من دروغ نمیگم من میتونم قسم بخورم 90 درصد گناه ها رو نمیتونه بکنه دیگه. چون گناه وقتی میخوایم یا باید قبلش دروغ بگی که جوشه یا باید بعدش دروغ بگی رفوشه چون نمیشه که آدم بدون دروغ اصلا میگه میشه را خلاف رفت. خانومش میگه کجا میری خب یه راستش که نمیتونه بگه میگه میرم هیئت میگه کدوم عید میری یه دروغ دیگه بگه می میگه میرم بیت الحسن به این توجه ببهمه یا میگه کجا بودی تا این موقع شب میگه پا منبر توکلی بود میگه بلنگور هم که نمیده اصلا همین میگه ب... نمیتونه که راستش شد ب... ب... دروغ بگه اصلا کسی آقا دروغ نگه نمیتونه فلجه فلجه شبانه خب کلاه یکی رو برداری خب با, رو با صداقت میشه من میتونم به شما بگم آقا من اینو رو یه میلیون و پونست خریدم هشت نیم میدم میگن آقا تو ما رو چی که فرض کردی آقا اصلا میتونم آقا بگم یک و نیم خریدم هشت و میدم بعد بگم به حضرت عباد هشت و نوست خریدم میگم بچه هشت و نیم میدی میگه چه کم داره برگشت میکره میگه اینم شانس توه چه کم داره برگشت میخوره میگه بخر چند رو دیگه بیای خودم ازت نهونیم میخرم دلار داره میره بالا بعد اینا رو بکر دیگه اگه میتونه آقا بگه من این رو یکونیم خریدم هفتونیم میدم بعد همش از اینا رو بگه بگه اگه به خود این کلیدیه اگه مال حروم میاد تو زندگی همون دروغ میاره. اگه رشوه هم میاره اون امر اون این دوتا گناه این یکی شراب یکی دروغ یکی قذب القذب و مفتاح و کل شر قذب کلیده همه بدی هاست راوی وقتی اینو شنید گفت یعنی آقا قذب این همه خانمان سوزه حضرت تا مودن وی حکه گفت چرا خب یه خورده تفکر کن آدمی قذب میکنه به زن پاکتامن نسبت زنا میده میگه زنا زاده آدمی قذب میکنه یکی رو میکشه من یه شب اینجا بردونم آدمی قذب میکنه مادر خودش رو کشته نینق قاتل نیا رو عصبانیت دفاعه ولش داده نت مادرش دوست داشته علنا همش تو سرش میزنه میگه من مادرم مادرمو بکشم بچه‌شو کشته این آدمی وقتی قذب کرد ممکنه دیدی حالا عصبانی میشه به زنش میگه من از وقتی که با تو ازدواج کردم یه آب خوش از گلوون پایین نرفته نه چون عصبانی میشه حالا من خوب آشو میگم دیگه چه چیزایی که تو عصبانیت میگه نمیتونم رو, رو میاد تا دم دنم نمیتونم که آدم عصبانی چه چیزایی میگه چه کارایی میکنه؟ این کلیدیه به خاطرین حضرت میفرماید که قرآن میگه ول کازمین القیز میگه اونایی که آتش قذب رو خاموش میکند و کار بزرگیه امام میفرماید که این قذب تو خشم تو جرع جرع بده فرو ببر بعد می من به پسرش میگه جرعی ندیدم شیرینتر از قذب که آدم قورت بده حالا فکر اونا رو اون می فرماید. این شبیه اون جمله که قاسم ابن الحسن میگفت شهادت بر من از اصل شیر اینجا میگه احلا میگه من شیرین تر از این ندیدم که آدم قذبشو قرد بده حالا نمیدیم اینه وقتی قورت میدی تو چی کار میکنه این آتیش آدم وقتی قورت میده درونشو چه جلایی میده چه صفایی میده ما که تالا یه بارم قذب اونو فرو ندادیم تباید شو میکنیم آدمی بعد بچشه دیگه حلوای تمترانی تا نخوری ندانی ما نمیدونیم که این چه میکنه با درون امیر المون میگه من پسرم جرعی احلا شیرین تر از قذب ندیدم وقتی آدم فرو میده قردش میده برای خدا برای خدا ولا الاز و لذیذتر از این همچی آقا هم شیرین تر هم لذت بخشتر. از قذبی که انسان فرو میبرد. این همون شبیه اون است که قاسم میگه برای من زیر سوم اصبا رفتن از اصل شیرین تره. ماینه نمیفهمیم. ما میفهمیم می که آقا کسی شهید بشه از اصل شیرین تره. به این توجه باید. اونی که چشیده میفهمه دیگه. حالا من اگه اجازه بدین یه حدیث دیگه هم نوشتم ولی می از امام باقر حدیث نوشتم که اگر کسی آتش قذبشو خاموش کنه در حالی که قدرت دارد که مطابق این قذب عمل بکنه یه بایدام قدرتش هم داره یه بایدام از رو ضعف قذبش قورت میده یه برای تو عصبانی میشه آماده شر میشه از ماشین بیاده میشه میخواد یه شرلی بپا کند. تو تاریکی یک جلو که میاد اینه او چهار تا کش رو گردن کلفت لفت ماشین هم بر میگرده میگه الله برش این ای خیلی ثباب ندارد امام میچه قشنگس و میگه نه پیر مردم هست، زورم نداره، ایشکیم نداره، اما میگه لاالله می غللا. قذبش رو فرونش شوفرنشو میتونه هر کاری بکنه، اما این قذب رو خاموش کرد. میگه عمل الله قلب او یوم القیامه رضا خدا روز قیامت قلب این رو پر میکنه از رضایت خودش. میگه من این بنده رو دوستش دارم همونطوری که امام حسین تو گودال خطابش میکردن یا ایتو هن نفس رو مطمئنه ارجعی الارب بکر رازیتا مرزیه خدا قلب این و روز قیامت از رضای خودش پر این پاداش این کسی خیلی کار سختی هم هزایون قذاب وقتی که طغیان میکنه دو چیز کنترلش خیلی سخته وقتی اینا طغیان میکنن. یکی غضبی که شهوت شهوت هم همینطوری خیلی هم اینا شبیه همدیگه هم. آدم عصبانی می‌بینید نفسش توم توم می‌زنه نفس نفس می‌زنه آدمی که شهوانی هم میشه میره. آدم عصبانی اصلا حرارت بدنش بالا میاد اگه دستش رو ببینید گرمه خیلی به هم شبیه هستند اینا وقتی حالت طقیانی به خودشون میگیرن کنترل اینا خیلی فوق العاده مشکله خیلی هم فوق العاده عجب دارد این کسانی که به یه جهایی رسیدن اینجا رسیدند این شهوت طقیان کرده اینو کنترلش کرده این توجه کردم حالا یه حدیثی من از شاید امروز به همینم برسم از امام زین العابدین نوشتم امام میفرمایند ما من جرعت احب و من جرعتین شاید اصلا امروز ما به همین برسیم میشه هیچ جرعه نیست نزد خدا محبوب تر از دو جرعه باشه خدا دو جرعه رو خیلی دوست میدارد یکی جرعه تو قیزن رده ها مؤمنون به هلم یکی جرعه خشمی یا قذبی که مؤمن اینو فرو ببره قورتش بده این خیلی پیش خدا محبوبه و یکی جرعه و مصیبتن رد ها مؤمنون به صبر و یکی هم جرعه مصیبتی که مؤمن با صبر هضمش میکنه داغ حسین که طوق میبینه من خیلی سخته این توجه بفرمایید اینو مصیبتی میبیند مثلا بچه جوونش و رو میبیند و شما بچه از شب از تعلی اکبر گفتم شما بچه ندارین امیتینا که جلو میشنند بچه هم میکنند بچه ای بیده ایش که سار داغ جوون چقدر برای پدر یه مادر سخته ولی که با این کنار میاد این مسیبت رو حضمش میکند این نزد خدا خیلی محبوبه خدا هم تو قرآن گفته چی؟ بشر سابری این چجور تعریف کرده از این گروه بعضی نازک نارنجی هستند جوانو بعد تمرین کنی اینجوری نباشی بعضی ها ناز پروردن از نسل امروز تو اینجور بار میارند در مادران نمیذارن بچه ها سختی بکشن با دینار ناز پرورده بار میارن حیلی آسیب پذیرن این نزد زودم خودکشی میکنن اصلا توان نداره که یه دختری بهش میگه نه میره خودشو میکشه ای با حالا بکر نه میگه نه دیگه دنیا بران تیر و ادارش بیست و پنج تا قرص میکنه میگه ما بیا بیرون بی... حالا بکر نه اینقدر از این نه ها باید پشنه ناز پروردن اینا تقصیر پدر مادر است تا بد بار میارن بچه ها رو. نه بچه باید سختی ببینه بعد آب دیده بشه اما قراز این است یه ده ناز پروردن خدا راجب اینا میگه ازا مسه و شر و جزو چجوری از اینا بگه میگه خدا نکنه آقا یه گرفتاری تو این دنیا جزع میکنن گای کفر میگن گای به خدا بد و بیران میکن گای از دین برمیگردن گای با امام زمان قهر میکنن ای بابا میگیم چرا اینجوری می... گای با امام رضا قهر میکنه میگه دیگه حرمت پا... پامو حرمت نپیزن چون... ناز پرورده است. نه ولی یه خورده دندونت درد گرفته دیگه خوب میشه یه خود تربت بذار روش <laughs> <laughs> یه ذره تربت بذار روش این تربت که میذاری روش میده میگه چرا جزا و فضا همین تو که چیزی ندیدی که تو مگه دیدی سیلی تو صورت دخترس میگه مگه تو دیدی سر دخت بچه شیشمار شش... ما میگه چرا اینقدر شلوغ میکنی از آروم میشه آیا هم تربت بذاری آروم خجالت میگشه آروم میشه میخوابه اینه که شفاست تربت حوی عبدال شما هر جا که میذاریم میگن آقا چرا اینجوری میکنی؟ تو چی دیدیم میگه؟ تو ای کربلا بودی بچه کار میکردیم؟ آقا یه زرده حالا گوشت درد میکنه دیگه. یه زرده. یه گروه رو میگرد ازا مسه و شر و جزوه. اما یه گروه رو میگه بشر سابری. اینا تربیت شدن نظین ضا صابت مصیبه قال انال اللا و انال این اگه یه مصیبتی ببینن میگن مثلا به داغ جوون دیده به خانومش میگه که پسرمون یه خورده زودتر رفته چند رو دیگه هم نوبت ما انال اللا منین ها یعنی همه بعد بریم حالا مال این زودتر شد. چشم هم بزنیم مام به اون ملحق میشه. الان مستعدداددم میره. قبرستون هی hey, به اونا چی بگه؟ بگه انا به بکم لاهقون بگه یه جا برای من نگه داریم همین روزا اصلا خوب آدم جاشو بخره <تصفيق> چون یه آقای داغ جوان دید اومد سه تا قبر خرید تو همین بیش سهرا. ما اینا رو دیدیم این آدمی که داغ جوون دیده اومد رفت اونجا که قبر بخره سه تا خرید گفتم چرا سه تا گوه یه دانم برای هاچخان میدنم برای خودم روزا میایم دیگه. گو همش هم می اومد اونجا به پسرش میگفت جایی ما رو نگه دار میای نشبکولین ناراحت نبا چند ن نوبت ماست این خدا میگه بشر شر صابرین دنیا همین است دیگه اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه حالا از نو چقدر تعریف میکنم یه کلمه عربو میزنن مجرب میگه رحمت خدا بر اینها صلوات خدا که هم المهددون اینها هدایت شدن یه گروه از اینا هم بالاترند از این گروه دوم هم بارده اینا وقتی مصیبت میبینن شکر می‌کنیم. مثل همین زیارت آشورا که شما سر تو میذاری رومور اللهم لک الحمد حمد شاکرین لک علا مصابه هم. ما بر این مصیبت بزرگی که به امام ما وارد شد خدای تو رو شکر کنید دین ما جاوید شد دین ما قوت پیدا کرد میگه می مصیبت دیدیم اما دین رشد کرد دین بیمه شد دیانت تقویت شد از یه دید مصیبت از یه دید نعمت ما اون جنبه رو شو چشוק میبینیم همه چی همینطوره همه این مصیبت ها از یه دید مصیبت از یه دید نعمته برای این حضرت زینب میگه ما رأیتو الا جمیلا اون دیدشو نگاه اون سمتشو نگاه میکنه مگم خدا یه امتحانی ما رو کرده ما رو سفید شدیم سرف رازیم شکر میکنیم از این امتحان رو سفید بیرون اومدیم پیش خدا آورو داریم اینا میگن ما شهیدم میشیم خدا از ما راضی باشه برای این قاسم میگه احلامن اصل میگه این مصیبت از اصل برای من شیرین چرا چون درجه میگیرم نزد خدا آب رو پیدا میکنم بیشه پیغمبر. بیشه مادرم فاطمه روسفید میشم. میگه من اوج میگیرم با این شهادت. من برام از اصل شیرین داره. یه دیدش مصیبته یه دیدش. تا چجوری نگاه کنی دیگه؟ یکی عینک آبی می اینک مشکی میزنه همه این حسینیه رو مشکی میبینه. یکی اینک سبز میزنه همه رو سبزی تا عینک شما چه جودی باشه یکی اینک خدایی میزنه همه چی رو خدایی سبقت الله و من احسن و من الله سبقه رنگ خدا یکی با رنگ خدا میبینه میگه ما رعای تو الا جمیلا. حالا قلع این است هیچ جرعه نزد خدا محبوب تر از دو جرعه نیست یکی جرعه خشمی که آدم فرو بخورد یکی جرعه مصیبتی که آدم حضم بکند اینا خیلی آدم رو روشت می ده اینا خیلی انسان رو بالا می برد اما این حدیث رو می کامل بخونم حیفه و ما من خطوتن احب و الله من خطوتین هیچ قدمی نزد خدا بالاتر از محبوبتر از دو قدم نیست یکی خطوتون یسد و دو هل مؤمن صفن فی سبیل الله یکی مؤمن قدم برداره یه صف نیرومندی رو در مقابل دشمن ایجاد کنه برای خدا جهاد اون قدمی که انسان برای جهاد برمیداره اون قدمی که حضرت عباس برداشت در دفاع از دین قدمی که امیر المومنین برمیدارد در دفاع از دین خیلی آقا امروز من خیلی آقا امروز انقلاب رو تضعیف می‌کنند. من همیشه تو سخنانی ها میگنم بعد تو پایینم گاهی به بعضی میگم میگم ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی بعضی ها اینجوری اگه مثلا با اینا پنج ساعت بشینی فقط ایوای انقلاب رو میگه. خب میگم اقا یه خوبی هم بگو. یعنی این انقلاب آقا هیچ خوبی نداره. جو. الان ما مثلا چهار ساعت از افتار نشستیم تا حالا دیگه. تو 500 تا ایراد این انقلاب رو گفتی. یه خوبیش هم بگو. یعنی اصلا یه, یه کار خوب تو این انقلاب نشده. این شعری که الان خوندم آقایون قرآنه میگه تو صبح تا شب عیب شراب رو میگی خب هنرش هم ببو خدا تو قرآن میگه یسعلونکا ان الخمر والمیسر از تو سوال میکنن نظر تو راجب شراب چیه؟ قل فیه ما اسمون کبیر و منافع ناز. میگه این گناه بزرگیه کبیره است اس اس میگن یعنی شراب گناه بزرگیه ولی منافعی هم داره ببینید بچه‌ها خدا میگه آقا در مورد شراب وقتی میخواد صحبت کنه میگه گناه بزرگیه منافع هم داره بله انگورو اگه بفروشی اینقدی پول گیرت نمیاد ولی شرابش کنی بفروشی بی سی برابر ارزش ابزوده پیدا میکنه میگه این منفعت هم داره من انکار نمیکنم که آقا باغ انگور داره خب انگورا رو بفروشی چقدر در میاد اما میگه تو اگر اینو شراب کنی خام فروشی به امروز نکنی بیس برابر این گیرت میاد ولی این گناه بزرگیه اسم همه اکبروم نفعه ما میگه زررش از منفعتش بیشتره قید منفعتش رو بزن برادرش به این توجه بفرمایید. خب شما بگو این انقلاب سی تا ایراد داره هیفده تان پنج تام خوبی داره حالا بگو بدیاش بیشتر از خوبیاشه ولی بالاخره دو تا خوبیشو بگو یه خوبی خوبیه این انقلابی است که آقا صف نیرومندی رو در مقابل اسرائیل ایجاد کرده شما این نمیگی این, این کم چیزیه نتانیاو آقا میگه که ما با ایران جنگ نمی میگه میگه ما نمیزنیم شما هم نزنید این آقا مگه کم چیزیه که رهبر انقلاب میاد به آمریکا میگه اگه شما یه موشک بزنیم ما ده تا میزنیم میگه بزنین تا بخوریم چون <تصفح> میگه آقا این کم این،, این صد صف نیرومندی که شما در مقابل یهود ایجاد کنید بعضی صبح تا شب آقا بعدی هاش آقا این که از, از مردم یمن دفاع میکنه مگه این کم چیزیه مگه کم چیزیه که مردم مظلوم یمن با موشک عربستان رو می <تصفيق> میکنیم اونا میگن که کار ایرانی هاست اینا همین بلندی های جولان رو میگفتن چی آقا گنبد آهنین میگفتن اینجا دیگه اصلا محال موشکی ایران همونجا رو زد همون رونتانی ها باقی ما با شما جنگ نداریم گفت من همونجا رو میزنم که تو میگی من گنبد آهنین زدم و هیچی رو اونجا صحبت نمی کند. اگه آدم قدرت باشد از دین دفاع کنه یک ما میدونی خدا از مومن زعیف خوشش نمیاد بعضی آقا دوست دارم مومن زعیف مثلا نماز شب بخونن ها ولی اگه آمریکا زد تو سرش بگه شالا خدا تقاس ما رو از این نامردا بگیره حوالت میکنن به حضرت عباس اون یکی دیگه هم میزنه یه لقت هم میزنه تو صورتی تام گریه میکنی میگی که خدایا تقاص ما آیه این خدا خوشش نمیاد از این مؤمن که خدا اصلا بدش میاد از مؤمن اینجوری ذلیل ضعیف بعضیا میخوان آقا مؤمنین اینجوری کنن خدا مؤمن قوی به خاطر امیرالمؤمنین در دعای کومل میگه قو خدمت که جواری وحت و علالعظیمت جوان میگه خدایا هم بازوی منو قوی کن هم جسم منو هم روحیه منو قوی کن بله خدا مومن مثل علی دوست داره وقتی آقا از دنیا رفت ماویه میگفت اون شیری که <تصفيق> پنجهاشو تو زمین فرو میکرد بدن ما مثل بیت میلرزید کارش تمام شد خدا اینو دوست دارد آقای خدا مومن قوی رو دوست دارد آدم ز... هر گردن کلفتی اومد رو, به رو اسلام قد علم کنه علی بینیشو به خاک مانی خدا قضا. هر گردن کلوفتی هر کی اومد نفس بکشه علی اونو زد مارید به زمین خدا این دوستش دارد قسم میخورم اگه مرتزا علی نبود پیغمبر نمیتونست دینو به اینجا برسوند شمشیر علی پیش میبرد اصلا خیلی جا که می آقا این آدمی که میاد یک صفه نیرومند در... الان انقلاب آقا این صفه نیرومندی که در مقابل جبهه باطل ایجاد کرده این کم چیزیه مگه نماز ما در مقابل این چقدر ارزش داره این توجه مگه روزه ما در مقابل این چقدر ارزش داره که شما بیایید با گام گامها صف نیرومندی رو در مقابل داشت. خدا قول آقا دعا کنید انقلاب قوی تر بشه ولی الان قضیه کسی الان جرئت نداره روزه به ایران بکنه دیگه کردن این اسرائیل که غلاف کرده دیگه نه حریف ما نمیشه. حریف سید نصرالله نصر الله نمیشه. ما که اصلا جای خود داریم. این قدرت. خبا شما این همه ایراد. خبا یه دونه خوبیش هم بگو. آقای شیعه رو قوی کرد تو جهان. این شیعه رو نیرومند کرد در جهان. این توجه ببین. مردم جهان رو اینا آقای من نیل تا فراد. نیل تا فراد یعنی چی؟ یعنی اگر آقایون اینا قدرت داشتن مکه رو هم میگرفتن نیل تا فراد مکه هم هست مدینه رو می هم میگرفتن نیل تا فراد هم اما از اون موقع که انقلاب شده آقا همون زمین های خودشون نتونستن نهبس کنن خیلیش از دست دادن حالا پیش نیامدن که الان آقا فقط میگم همون کلام رو نگرد همین زمین ها رو اکثر داریم هم داری. همون هم نمیتونن این نیروی نیرومندی که اما یه زمانی ایرانو رو می گفتن اخل یهود. شما میرفتی تو همین عربستان همین مردم عربستان به ما می گفتن می گفت مجووس می گفتیم چرا؟ می گفت شما با یهودی یاشا اینطوری بود دیگه. می گفتن شما برادر یهودی هستید. امرو برادر یهودی ها کیه؟ شما. خب این خیلی نیروی بزرگیه. شما چرا اینو کوچیک حساب می؟ بود؟ دفاع از مظلومین مگه کمه هر مظلومی تو دنیا رو شما داشت دفاع دفار مگه چیز کوچیکیه. به خاطر این خطوتون نبینی یک قدمی که انت... الان من یه دونه خوبی انقلاب گفتم اما انقلاب خوبی زیاد بذین ما زمان شام آقا حیعتی بود من حیعت های مهم تیران میرفتم 15 نفر 50 نفر دیگه شبای خیلی شلوغ آقا هشتات نفر, نفر. توی این خونه های دیگه سیار بود دیگه همه هم پیر من الان آقا حیعتی تشکیل میشه حالا ما حیات خودم رو نمیگم 20000 هزار تا جوون میاد چهل هزار تا جوون میاد چهل هزار جبون حسین حسین میکنه این را ما، اصلا امام حسین آقا جهانی کرد انقلاب اسلامی خب مگه کم آقا خدمت به دست خواهبی عبدالله کرد؟ این همه جوون شما رو این میشه اینا پیاده میرن زیارت اینا همه خدمات انقلابه حالا ایرادم هم داره. ما نمیگیم ایراد ندارد. اما خواه آقا تا چهار تا خوبیش هم بگو. خوبی قابل مقایسه نیست با ایراد هاش. حالا یه دقیق میان همهش مثل مگس. مگس اینجوری آقا. همهش عیب رو میگه. آخ خوبی رو بگو خواه. همهش ایراد رو میگه. یه آقای میگه آقا همه این دزدی آقا من... تحقیق کرده بودا میگه همه این اختلاس ها همه این املاک نجومی همه این حقوقای نجومی رو میگه من رفتم بررسی کردم در آوردیم گفتن طبق آمار دادیم دو درصد یک درصد بودجه کل کشور بقیهش داره خرج میشه اما دشمن یه جوری تبلیغ میکنه شما که میگین تو ادارات دارن میخورن و میبرن اما شما هر مدیری که از بیاد بیرون مثلا هم خورده هم برده یک کلاکچه هزار برابر بزرگش میکنن. نیگه دشمنه. جوری تبلیغ میکنن. همه رو بخوان معیوز کنن. ناامید کنن از حکومت. آه کی حکومت به این خوبی اداره کرده؟ با. کجای دنیا بدن دزدینی؟ کجای دنیا فساد نی؟ کجای د... اصلا کجا نیست؟ حالا چهار تا ایبشو میگیم ما میگیم بگو خوبیشم بگو ببا این خوبیارم داره حالا شما شب، شما سال تحویل آقا من تقریبا نگاه میکنم بینم همه مردم ایران یا مشدند یا حرم عزرت محصومند یا جمکرانند یعنی سر صفره احل بیتند یا کربلان اونا هم که تو خونن تلویزیونشون رو باز دارم مشد رو میبینم و هشون میبینم براجعه میکنم یعنی شبای قدر میبینیم همه ایرانیا ها سر صفره احل بیت هم دارد. خوبی هم داشته دیگه و مردم رو به دینم دعوت کرده دیگه ایرادم هم داره نقص هم داره قلعه زمانه این است یکی قدمی که ببینید قدمی که یه میاد می صف نیرومندی رو در مقابل دشمن ایجاد می‌کنه. این, این کمچی دومی رو بشنمید و خطوتون الازی رحم قاطع عجیب آقا این دوتا رو بخله هم پرار دادن و یکی هم قدمی که انسان بر میداره با رحمش که با او قطع کرده میره وصل می <تصفيق> میکنه میگه این با اون یعن بازه برادرش باش قطع رابطه کرده الان ما رمزونه میره خونهش افتاری روش میروسه میگه اب نداره کوچیکتر از منم هست ولی میرم عیدفد میره خوش عیدفت رو بهش تبریک میگه. اینو با او یکی میکنه. ارزم تمام این اینم صد میین و ما من قدرت اب الالله من قطرتین و هیچ قطره ای نزد خدا محبوبتر از دو قطره نیست یکی قدرت و دم قطره خونی که برای خدا ریخته بشه. این جمعون را همش دعا کنید که خدا مرگتون و شهادت در را میمیریم که بالاخره آقا میمیریم که اما بهترین مرگ اینه که آدم خونش در را خدا ریخته بشه هیچ از مرگ از شهادت نترسید. این کمال انسانه اصلا دعا کنید اشانا امام زمان بیاد و در رکاب اونا مرگ شما شهادت در را خدا بشه میگه اگر منو هزار بار ب... بحجه بلاغه هزار بار با شمشیر قطع قطع کنن این برا من آسونتر از اینه که به من میگم تو تو بستر میمیری شهید نمیشه می آخر در خونش قلطی در میگون می از اون نمیتونست طاقت بیارد که در بستر بمیرد واقعا برای علی شکست بود که اون در بستر بمیره. اون مجاهد بزرگ وقتی ضربه خورد به سرش پوست تو رب الكعبه در پوست خودش نمیگنجید چه یک قطره خونی اون جایی که خون عباس ریخته میشه اون جایی که خون اکبر ریخته میشه آقا این خون چقدر ارزش دارد اون جایی که خون قاسم ریخته می شود و یکی هم قطره دماتن من خشیت الله فی سواد لیل یکم قطره عشقی که از چشم آجیب است اونجایی که شما گریه میکنی با اینکه که خونت ریخته بشه یکی میدونه و واقعا هم یکیه این یکیه البته خون شما با گریه خود شما خو... شما اگه خونت ریخته بشه در راه خدا با اونجایی که شبا از خوف خدا گریه میکنی اینها وزدش یکیه مال تو با مال خودت مال امام حسین هم همینجا خون امام حسین با گریه ای با امام حسین امام حسین خودش آقا روز آشرا چقدر برای خودش گریه میکنه خودش میگشت برا چقدر بلند بلند گریه اون میدونست گریه برای خودش چیه خیلی جواب با صدای بلند گریه میکره بعد اگه شما دقت کنین هر دوی اینا هم قطره خون شاید هم قطره عشق دین رو ترابط میده زنده نگه میدارد داره شما دیشب اومدی گریه کردی ایمان تازه شد یعنی ما رمضون آقا ایمان ها رو تازه میکنه آدم وقتی از ما میره بیرون یه حال و هوای دیگه داره مال این گریه هات این گریه ها دین رو زنده میکنه احیا میکنه خون شهید هم دین رو احیا میکنه امام حسین گفته بیاین یه طرحی بدیم که این دین دیگه آسیب نبینه گفته اونی که سخت من میکنم آسونش مالشون گفته این سخته گفته گفته من تیکه تیکه میشم ولی شما بلند بلند, بلند برای من گفته و این طرح ما و که همه میگن ما هرچی داریم از این محرم و این یه طرح آقای این که دین رو بیمه کرد ابدی کرد گفت من خون میدم به خاطر این جمله ما انا قتیل العبرات این تشمیقتون که بوده من حاضرم تیکه تیکه بشم ولی شیعیان برای من بلند بلند گریه کنیم شما؟, شما نکن این گریه زنده. نه این گریه زنده میکنه آدمو شما اونجا که برای امام این گریه بعد اگه یه جا پا داد برای امام این گریه کنی این عشق و کچی نکن یه قطره عشق دریاها آتش جهنم خاموش میکنه من تو رو دیدم. اگه تو یه امت یه گریه کن باشه خدا به همه اون امت تره تو میکنه. این جمعیت که اینجا اومده من نمی... نمیدونم چقدر که. اگه یه دل تو این جمع بشکند بشکنه آقا دفعه دل, دل هر بریزد عشقش جاری خدا به همه این جمع هم به نظر رحمت میکنه. اگه تو کل امت اسلام آقا یه نفر سهرا بلند میشه از خوف خدا عجب خدا به همه این امت ترحوم میکنه که ما اینو داریم پسر نرجس خاتون سهرا میشه همه کسری های ما رو هم اون جبران میکنه دونجا. خدا به خاطر او به همه امت ترحوم میکنه, میکنه اینو قرآن ها اینو وقتش و ما کان الله معذبهم و انتفیهم آیه قرآن خدا به پیغمبر میگه معال من اینا رو عذاب کنم چون تو بینشون هست <تصفيق> <تصفيق> یعنی به احترام تو حالا اون آقا نیه. الان پسر نرجس خاتون هست دیگه پدر اینو من همش میگم الان شب شنبه هم از پدر من الان پدر هم دیگه میرم تو محل بارها تو سخنانی با رو از من شنیدین همزایی ها میان میگن آقا بچه هات زدن شیشه ای ما رو شکستن نشون میدم میگن آقا این بچه هات من چی میگن اولم خجالت میکشم هم میگم که من شرمنده. هیچ <تصفيق> پدری میگه به من چه بریم پاسه بون بیاریم ببین خب. پدره دیگه میگه بعد میگم تاونش چقدره چ... میگن ست تومن دیویست تومن دیویست تومن میدن بعد میگم که حلال کن واقعا شرمنده <تصفيق> یه وقت آدم نجیب اینجوری هن. تا شش ماه هر وقت اونو میبینه میگه هنو من شما رو میبینم خجالت میگیرم، بچه های من بد کردن امام زمانم همینه سهرها بلند میشه میگه خدای ها من شرمندم شیعه ها بد میکنه تا اونم میده میگه از عبادت های من بردارین کسریای های اینا رو جبران کن این... یه جا اگه جوانا پا داد بلند بلند برای عبیبت الله این کم چیزینی همه جای پیش نمیاد. من هم دیگه امرو امشب همین روزه رو بخونم تو این روایت کربلا دیدم کتاب ملا آقای بهتاش گفت امام زمانو خواب دیدن گفتم کدوم مصیبت کربلا دل شما رو آتش زده که شما میگین من شب و روز برای این مصیبت گریه میکنم لا علیک و مساء این کدوم مصیبت و امام سکوت کرد چیزی نگو گفت من خودم جلو افتادم گفتم آیا مصیبت عموتون عباسه گفت اگه عموم عباسم بود خون گریه می‌کرد گفتم آیا مصیبت شیرخاره حضرت علی گفت اگه عموی شش ماهه‌مم بود خون گفتم آیا مصیبت گودال گفت گو اگه جد غریبم حسینم بود آقا این کدوم مصیبته؟ وق مصیبت اسارت امم زینب همه <تصفيق> منو به اسیری بردم، شهر به شعر من این روزه رو کم میخونم روزه اسارت کم میخونم سختم هست یعنی کار منم نیست اما هر وقتم هم میخونم همون خانومی که ببینید همون خانومی که هر وقت میخواست سر قبر پیغمبر حضرت زینب اینجوری نبود دلش برای پیغمبر تنگ شد چادرش رو سرش کنه بره شب به باباش میگو به باباش میگو پدرجان دلم برای پیغمبر تنگ شده. خیلی وقت نرفت علی میگو من تو تاریکی میبرم میگن امیر المومنین از جلو میرفت امام حسن از راست میومد امام موسیٰ ندچه یعنی سه تا امام زینب رو همراهی میکردن باز وقتی به حرم رسید، به قبر امام میرفت این قندیلا رو خاموش میکرد این شما رو میگفت دلم نمیخواد نامهرم چشمش به حجم بدن زینب بیبی بی پوشیه داشت مقنعه داشت چادر داشت امام مگفت حجمه. ب... راوی گفت من چند سال تو کوفه همسایه زینب بودم آخر نفهمیدم این خانون قد بلنده قد کتاهه حجم بدنشو ندیدم حالا این زینبو بیارم مجلس شراب اخ اخ اخ اخ اخ اخ. من خیلی من مذارت میخوام از همه از امام زمانم مذارت خیلی معذرت میخوام شراب میخورد میپاچید به صورت عبا حکم به وقت پا چوب خیزران بزنه به لب و دندان عبا عبدالله حلسان من هی... هر جا زینب اومده آقا مسلک بوده من هیچ جا ندیدم این زن بیتابی کنه اما نمیدونم این مجلس چه خبر بود جلو این همه حرامی جلو این همه نامهرم زینب دست انداخت این گریبانشو پاره سلالله